بسم الله الرحمن الرحیم اون عبارتی که در خطبه قبلی مطرح بود و به صورت آنه الله و الان نفس امده بود حضرت در خدبی دیگری که همانند این خود بس این عبارت را باز تکرار کردن در این خطبه به این صورت آمده شکرت احیا اقله و امات نفسه اونجا آنه او الله و نفسی داشت اینجا امات نفسه داره بقید همه ایسان ها نفس دارن نفس و بدن جمل میشه انسان کفرم نفس دارن ما نفس داریم بدون نفس بدن زنده نیست محتست نفس همون که ما حیات این سال این نفس در اصل تکرار کارها محتمیان برپاره از باورها یه رنگی ایگه به خودش میگه اگر باور داشته باشی خدا هست و باید بوشت برنش داد و موفق شد بوشت برنش داد یه رنگی بخشت میگه ایمانش میره بالا و مانتر قافل بود از این که خدایی هست قافل بود از اینکه خود گوش به داد و اولا هم گوش به نداد این که دیگه میگیده اون هم ولی هم به طبع کارهایی که می کنه صفات مخصوصی به او ظاهر میشه این دومی هم به طبع کارهایی که انجام میده صفات مخصوصی ظهور پیدا میکنه و انسان رو می سازه. آدم بخی پس پرست میشه ظالم میشه, میشه، تمام این صفات از آثار تکرل کارهاییست که بر اساس باورهای خاصی انجام میگیری و به اعظام شیل میده ای که میشه صدام ای که میشه که میشه بر امام خبینی همه ها در و کنش هایی که بر بروم باورهاست و طول این ها ساخته میشه میشه به همه امام خبه ای اونم میشه صدام با همون اونم آقابتش اونجور میشه اینم آقابتش اینجور میشه برای بنابرای این نفسی که در از کارهای بدنی شدی خاص به خودش بگیری خیلی از اشکال نتیزیش بردن نفسی صدام نفس برده نگه بیدن نباریش یکی بیمیلی خیلی بارشتماییتر میشه چون هرچی زنده بمونه بیشتر آدم کشه, بیشتر ظلم بکنه بیشتر فساد بکنه این نفسی که خدا به ما داده و در اثر اعمال بدن ترقیل میکنه یا قایی میاه این نفس رو پرماندگان با برنامه خاصه ادایت شروع کرده به اسلام و رشد چون اگر این برنامه رو نمشه استاد همه آدم ها زندگی همزه گرسته شد شود بالا رفتن بال قضا تشتیم شود می بالا, بالا ها پسوار ریدیاز ها خدا نه احزا که من کردم با این همه مقدمات این چای سری سیگوری کنید توی پیابون خودش هر جوری می خواهد زندگی کنیم با یه برنامه مناسب با انسان برایش تنگید بکنیم تا بگید چون انسانی زندگی انسانی این بوده باید باشه این کار را باید بکنیم به روش دیگه این کار رو باید, باید ترک کنیم برای عدم ظهور و بروز فساد در فرد و در جامعه در این برنامه از اولین پیغمبری که کنهایی بطار برای هدایت اصطلاح نسل انسان نازل فرم بود متره شده نزا امیر علیه اسلام و نه فکر نکنید که مسئله تقوا و نزوم و وجود تقویر اسلام خواسته از اولین دین و مذهلی که خدا به وسیل اولین پیغمبر تنظیم کرد مسئله تقویم اونجا آمده بود یک کارای رو بود انجام بدیم یک کارای رو انجام بدیم اگه آدم گوشی نکنه به این مرامه نفسش رنگ صداغی به خودش می کنه متعا بسید به قدرت انسان هر چی که قدرت داشته باشی می ریجی رو نداشته باشی توقف میکنه بعضی شراعی زندگیشو که زندگیشون که قدرتشون ادامه داره میشه صداحوش ها رو بعضی بسطرام نیمونن نیمچه میشن اما اگر ما بخواییم انسان احسان زندگی کنه به برهداف انسانی به باید بیاید تپ برنامه عمل بکنه حالا اگر نفس ما آزار گذاشتیم چهار میکنه در نفسانیت اینای که نفسانیتشون قلب میشه عقلم استهدام نکنن عقل اونها از دیر نفس امباره میشه به هر چیزی که نفس امباره تمایل داشته باشه تحکم پیدا کنه عقل برایش برنامه ایزی میکنه انان که ها عقل بیشتر از ما هم داشته باشن افتکار دارن اختراع دارن اما چون نفسشون در برقی امباره به از تمام علم و, و چیزها استفاده می کنند به نفع رسیدن نفس به هواهاشون لذا چیزی جز فساد و آدم کشت و قصد و, و, و زندگی جنگلیستی دیگه نیست زمان عقل آزاد میشه. در خانه شروع میکنه. که نفس را اسیم نکنه از رسانت و مفوض حکومت نفس آزاد باشه. این هم وابسته به تقویز هیچ جایی نداره اگر ما رو مراد کردیم خود تقویر برنامه که نفس امارت و آرام آرام از اماره به بودن میره پایین تا میرسونه به لبا معلومه به مطمئله کار تمام میشه اما اگر اون برنامه رو پیگیری نکنیم نفس اماره حرکت میکنه ما باد میریم دوبارش افدارش مقدمات فرهم میکنه سعی میکنه مفوز پیدا کنه پست مقام برسه با پول برسه و وسایل مسایلی که همه قوهنها درن انجام میدن اگر اون که نفس انباله میخوان و عقل و اسیل کرده پیش بره، اینجا موت نفس پیش میاد این ها دیگه نفسشون مونده دیگه اما اگر طبق نصور شعر عمل کردیم حیات پیدا میکنه عقل و آزاد میشه راه چهاره بیتر مطابق مواقعیت ها تشخیص میده رضا اولین اصل که امام ساده صلوات الله صلوات مولای از عقل انتظار داره اینه که فرمود العقل ما او بی نبه الرحمن اولین اصل عقل حسابی نیست که در برابر خدا بندگی کنه اینو بفهمیم که خدا هست و باید بشتاد. این اگه نفهمه یه یعنی اونا دارن اما چون این نفهمیدن آقلانه کار نمیکنن دوزی میکنن، قارت میکنن، آدم روشی میکنن همه چی رو به نفت خودشون انجام میدن براید هر ما شهر نفت نفت وقت ما دستور شر عمل کردی نفس می نفس نفت اگر ما مازم میشه وقت درست میفهمه میفهم به خدا هست میفهمه باید روش برفش شروع میکنه و هم اسلام میشه و هم جامعه میشه اما گره اینو نفهمه هرچی بر عمر این آدم بگذاره فساد در بیشتر میشم. خودش بر هم جامعه زافرونن نفسه نفسه امماره به زورو از اماره ام بودن باید اماته کرد اینو نمیشه اماته کرد بیرون خدا دو تا بایدن و بحیات ماشه. اما از اون مرحله و از اون سبقه و باید با خودش باید. اونم با ادامه بندگی در راه آموده هست کمیشم بیب و بعد از مدتی بیبینه دیگه نه به کار نداره نفس عمال و یه مشاهد آثار ظاهر میشه آدمی اولین اصلش گیری بعد از مراهات تقویم و ترکیمونا و احتاعت فرمان و موت نفس اماری پیش میاد وقتی موت نفس اماری پیش بیاد بخل آزاد میشه درست میفهمه بد و بد میفهمه خوبم خوب میفهمه اما تا اثیر نفس امار است کارهای بد نفس رو خوب میفهمه ازا اثیرمونه کفار و کفار و اما چون کار بد و بد نمی فهمن ازا انجام می دن این آدم دیگه به مرحله می که بد و بد, بد بدونه خوب خوب. بد رو اجتناب بکنه و دنباله خب می رو و انجام بکنه خب حتی در از جلیلو آدم که در مرحله لحظه هم ما رو انتیکار می کنن در می رن. خوب خب هم می خورن چون قاعده به چیز که نیست یه همینه نکنی، اکیسد رفته از تا میتونه بیاره و تا هم میتونه هرما و امزام گردنی ها و, ها و نیازها رو توسته می خب اینا غالباً بدنش رو تهیکرش رو میشه اما اگر طبق دستور خدا عمل کنن بدنش روی خوده روز آخرتر میشه برد. سابق روزی دو مرتبه مردم غذا میخوردن حتی زبان پفرتم و قبلش دو ته بود صبح بخوردن روی کرد ااش بل کم کم به پاارت باش زیاد شد ال اخترا پاش بودش وسط میدون کردنش سه مطببه بر بیام کردنش پنج مطببه چون میگن چ یه غیر از این کلی این نخی کلذره رفته میخورن تا وقت میشن بره. یا آدم نشون به تیزویزون خیلی مهیم. <تصفيق> حالا ما بخواییم به بندگی بشید. برنامه شهر کنگم سواش وزد میشه، لاغر میشه، برنامه نیست. و برگت ها بارق، لامو کسی رو که افتاد تو خط خدا بی اثر نیست، اثر داره ولی. اولین اثرش نیست که به تدریج ایمانش میره بالا. با رفتن ایمان بالا، ایمان انسان تربیت میشه در سایه قوت ایمان آدم ی انواری میبینه این انوار خدا به عنوان اینکه راه درسته بیا و به عنوان رفعه خستگی و مژده به آدم نشون میده آدم مسرت پیدا میکنه خوشحال میشه از اینکه خدا این راهر پیشخش گذاشته و از اینکه موفق شد این نه انجام بده پیش پیشگاهات اینا که پیشگاهات عوان الله و تری راه برای شروع کرده میفهم می به راه رو وید ادامه بده انجام واجب و ترکی احرام یایی بدهی در مرامر خدا خب این میره تا جایی که ام داشته باشه و توان بدهی داشته باشه و تا این برنامه ترقی و تکامل انسان مومد در مسیر بدهی خدای متحاله کمی رو هزاد و سلاپودش رفته و برنده دیگران مثلا این مقدار رو سلاحی بیان فرمودن باقش هم خود رونده باید برسه و بفهمی که تو این رایی همچه هست اشون همش نگفتن چون همش زاهد بود همون که خدای مطال نگفته چون بود از فهم من رو قالت هم بود. اشون هم هجمالا این شاره فرمودن اما بیشترین کار هم خدا و هم مزارات محسومی رو دعوت انسان ها به تقوا انجام دادن این هم آیات تقویه نازل شده من همینه دعوت مردم به ترکیب گناه انجام دادن و یا هنو یعنی مقدمات و راه رو زیاد تحکیل کردن چون اینا تا وارد خط تقویه وارد والد بدهی نشد به اینجا جزا عمده اینه این رو زیاد کار شده ما مگر بخوایم به دنبال یا اقتیام با قرآن و حدیث حرکت کنیم خود و جامعه رو هدایت کنیم باید عزیزه شروع کنیم از ترک گناه باید مردم رو دعوت کنیم که گناه نکنند گناه اولین قطر ایست پدر فرد جامعه رو در میره حرف هایی دیگه شو اول ترک گناه انجام ماجمات رو ترک گناه این مورد قفلت قرار گرفته اگر ما بخواییم شغل و شغل ادایتگری و, و تبلیل مثل انبیاء باشه باید از اینجا شروع کنیم اونا اول اسمت فری کردن و بعد آمدن ما معمولیست حسمت ادا کنیم بلیم معمولیم تقویم رو مراحت کنیم اگر نکنیم تو خط اونها نیستیم مبلغ نیستیم ما مقاصد دیگری داریم در این دی مخبتی وقتی انسان تخور مراد نکرد ایمانش پایینه ایمانی که پایین بود تمام کارای انسان بود نوشته دنیا و پول بله زادم تبلیغم بکنه اما یکیسی بود خیلی منبر خوبی داشت اونایی که بخواستن مجالسشون رو رقبی را کنه مردم زیاد جرم شن دوتش می کردن اما چون تهی می کرد پول یاد گرفت خوشش می دادن من می گفتن اگه نیاد جمعیت نمی یاد عزیبه ببینند تیلی میکنه ندونم پس را میمره بالا فوشم دادن این هدایت یعنی کاری دیگه هست بیا کاریشون این بود فرما ما دربت میکردن به بندگی در برابر فرمان خدا کار ما همینه بود تا چون ورانه کرده به حدیث عربی ما مجبوریم عربی بخونیم اینا که ما می‌خونیم به این منظور یادمون ندیه وقت ما با عرمی ها با عرم ها حرف بزنیم محضور اینه که عربیات بگیریم قرآن رو بفهمیم خدا چی گفته رمایتاً بفهمیم بر امام چی گفتن اینا رو یاد بگیریم و هم خودمون اول کنیم و هم به دیگران یاد بدیم کار ما اینه این وسط کارایی که پیدا بشه نمیدونم بخواهی بازی کنیم با کامپیوتر نه نه مسالی دیگه است هدف اینه ما درس میکنیم عربی که برآن و بفهمیم چی گفته خدا و امام. بعد خودمون رو عمل کنیم بعدم به دیگران یاد بدیم این عمر ما رو بود پر کنم دونی که انبیو کارشون در تمام عمر همین بود حالا اگر یه وسطها در احسار و قرون آینده ای سیدهایی کشش شد ساخته شد که بهتر توانست کار ما رو انجام بده ما استعماله می کنیم اما هدف این نیست که وسطها درست تحتیل کنیم بریم توی یک از آدهای کامپیوتر کار کنیم ما بگیریم های بگیری اینو هر وقت یاد گرفتی چی؟ اونه خدا و پیوم برای امام مردم و هدایت میکردن به طرف خدا یاد گرفتی و خودت هم بیاری کردی اینو طولستی تو مردم و جامع پیاده کاری و وقت وزیار انجام دده این مردم و ستایی و خدای رشد کار پیشنیان آدم ها محساس نیاز مالیم کنی میره یعنی از راه رفته میرون بگنه امیدواریم خدای امتحال بحب و توافیق و همون نیت که آمدیم، همون ادامه بدیم انشالله اینها رو خوب یاد بگیریم، درد توسلینه خوب درس بخونیم و خوب هم رو تمرین کنیم این دوتا باید باهم باشو به الله راه همگی نیست هم پیغمبر فاسق با نداشتیم همه نه تنها عادل بلکه معصوم ده چون اگر مردم بگی به نرخودی این میکنه خوش بردش که میکنه یه راست میشه را خود کنیم این اولین مسئله است ولی خب دالا اکثریت میرن دنبال درست اما تقویر و براش اهمیت رازم و قایل نیستن خیر و منفعت دیلی کم میشه خیلی و وسط را برمی کرد و میرن سبا کاری دیگه مسئلی دیگه شیگر تش کم میبینن اگر همه از اول خوب دست بکنن و تقویر را خوب تمنی کنن خدا از وجود این در آید در جامعه روشن میسازه که همه استفاده بخادن ازش میدواریم خدای متعاد به همه متوفید محلومت کنه با هم امگوده باشیم چه الله نیستا به عروای طیبی همه انبیاء ایزام علیکم سلامت الله به خاتم انبیاء و حضرات مرسومی علیه مستلات و سلام با های خط تشریم و امامش رو های سلامت خدم الله All oh. right.